زمائم فصل چهارم دستگاه تفتیش اقایت کسانی که به زندان های طویل محکوم می با رنج و عذاب روزانی زندان روبرو بودند حتی کشیشان به این شکل از مجازات محکوم میشدند. اطلاعاتی در مورد حکم سرهمبندی شده برای یک کشیش به نام فرا و فابیانو بر جای مانده است این گزارش برگرفته از کتاب تاریخ تفتیش عقاید تعلیف ویلیام هاریس رول است. فرا توماس و و دی میلتو محکوم شده در روم تا جرایم بی نماند تا سرمشق ابرت برای همسایگان باشد. مایه مسرت ماست که شما در جایی محبوس می‌شوید که چهار دیوار آن را احاطه کرده، جایی که ما به شما اختصاص خواهیم داد، جایی که شما با عذاب وجدان و سیل عشق برای گناهان و جرائمی که در برابر عظمت خداوند، کلیسای مقدس مادر و دین پدر سن فرانسیس مرتکب شده و به آن اقرار کرده اید موی خواهید کرد. فرا در یک چهار دیواری محبوس بود. اما فضای کافی داشت که در برابر یک شمایل ایسای مصلوب و یک تمثال مریم مقدس زانو بزند، این مرد بیچاره میبایست در تننا باشد و خارج از آن مکان نتواند تکان بخورد. بلکه در آنجا گرفتار عذاب وجدان باشد و بسیار اشک بریزد. هیچ دری در کار نبود. بلکه تنها چهار دیواری بود که او را احاطه کرده بود. و از آنچه درباره آن بناها میدانیم میتوانیم حدس بزنیم که سوراخ کوچکی در آن بالا بوده که از آن برای او غذا پایین می‌انداختند جایی بوده که در انگلستان آن را کمی فراغت می‌نماند و آنقدر زندانی را در آن نگاه می‌دارند تا بپوسد و در میان نجاسات خودش چشم از جهان فرو ببندد مصادره اموال مصادره اموال نه تنها برای خانواده شخص بدعت گذار بلکه برای تمامی کسانی که او با آنها رابطه کاری داشت و برای ناهیهایی که او در آن زندگی میکرد به یک مسئله جدی تبدیل میشد. سر الکساندر کاردیو در کتابش تاریخ مختصر تفتیش عقاید پیچیدگی این موضوع را شرح میدهد. تمام وامهایی که بدعتگزاران میگرفتند و تمام گرویها و حق تصرفهایی که برای تضمین وام میدادن بی اعتبار بود. در نتیجه در معاملات مربوط به کسب و کار چنان فضای عدم اطمینانی به وجود آمد که در فلورانس الزام فروشنده یک ملک به تضمین امنیت در برابر احتمال احکام مصادره آتی از سوی دستگاه تفتیش عقاید به صورت یک عرف درآمد هیچ کس نمی توانست نسبت به درستی ایمان فروشنده یک ملک مطمئن باشد یا پیشبینی کند که کی ممکن است او گرفتار اتهام بدعتگزاری شود. حتی در مورد میثاق‌های شخصی غالباً تزمینهای مشابهی خواسته میشد. این اختلال در کارها چنان جدی شد که پاپ مارتینوس چهارم در سال 1283 دستور داد که ملکی که در دست خریدار واقعی است نباید در صورت محکوم شدن فروشنده از سوی دادگاه تفتیش عقاید مصادره شود.